الو، سلام مریم سلام رامین، حالت چطور است؟ خوبم، تو چطوری؟ الان کجایی؟ درست نمی دانم کجا هستم ولی فکر می کنم یک ساعت دیگر به تهران می رسم الو، مریم، الو صدایت را خوب نمیشنوم. شنوم می گویم یک ساعت دیگر به تهران می رسم رامین صدای مرا میشنوی بله فهمیدم یک ساعت دیگر در تهران هستی پس من الان به ترمینال میایم منتظرم باش باشه منتظر میمانم اما کجا در رستوران قطع شد اه دوباره تلفن قطع شد خواهرت به تهران میآید بله او یک ساعت دیگر به تهران می میرسد. خواهرت دانشجو است؟ نه. او پرستار است. برای کار به تهران میآید و شش ماه در تهران میماند. حتما خواهرت است. گوشی رو بردار. بله حتما خودش است. الو سلام مریم.